و آده یک روی من قابلی من برسومی من در داره که مجمعی یا الحمد به بود که از اون بس شدیم به حجیت زواهر کتاب به عنوان یک در مرخص حجیت زواهر و کلماتی که به از بزرگان مثل معلوم الله محمدنی استعرادی و در خطوه آنشان راجب بعدن عدم دیگه زواهر کتاب و استدلاعشون به روایاتی که توفیق الارب کنه اون روایات ها و خون چیزی از روایاتونها جدا نشکت بود من گفته نمان و این و علمای ما هم علمای دیگه اصولی هم استدلال بر روایت اعداله تمو به روایت زیادی رو نقل کردن که تعرض کرد لواقر کتاب شد هرچو که توضیحی که نو ان در این حساب که کلمات مرحوم استرابادی و اصل و که حاضر باشه به خصوص آیات احکام و چه ناظر باشه به کل آیات آره. چون بعضی عباراتشون خصوص آیات احکام هم به در بعضی دیگه کلا آیات اموارض و آیات تاریخ و آیات افلاق و مختلفی که در برانه کردیم و تمام اینها افحام به اجمال بیرانه تا تا این چه قاعد روید باشیم و چه قاعده بگونم انصاب هم همینطور همین که در کلمات علمه بند از بیشان آمده و ترس کرده متاسقانه بحث بایه ترمیی تو کنی کنی از ترسیر به علمی بادر اون که تبونیگه از در موامل هم اونها رو, زیاد زیاد رو کردن که من در موارد مختلف فیر و آیات کتاب تمثل کرد. هست من بخش جای بخشیز و کردم از آن. چون اگر مراد اینها خصوصا آیات افکان باشه این اشکال بارده. و اگر مرادشون تحمیل باشه میشه همین محضر رو که بعد از اینها بودن و این ها به اینها به کردن تعمین داد یعنی به عبارت دیگر ما در مجموعه روایاتی که داریم در مجموعه افراد با آیاتی کتاب تعصب شده این طور بسیدن خصوص باشه تو افاته دامنست تو مسایی قیامت دامنست تو مسایی توبیگ دامنست تو مسایی نوگه هست،, تو هست توی اخلاق هم هست ایه انبیا هم دامنست خب ما الان از کسو داریم که خاص به قرآنه انبیا انبیاء که آبا ایکی از ما داریم و از هم, هم, هم, داره. هم به فاستی هیاسو خود ویدیم این محاسه صحبه کتاب که عهد سنت هم دارن ما هم داریم کتاب نسبتا فراغانی هست که فساط هم بیا در روایات که هم شده خب در مقدار زیادی از این روایات با آقایات و قرآن شده که بود فرما میباده توی اخلاق همینطور توی افلاق همینطور هم یعنی اون مطلبی رو که آقایون اصلاح دارن که هست مثلا مجموعه درم میاد که کسی نموشه نو قر احرابه ای توی برایت خاصیست این خب انصالا خلاف زوافر مجموعی در رباریات اولا رباری که این ها که ما همه رو دریمان خمیدیم به استثناء رو احتمال بود و خیلی باز درده بود و مشکل سردی داشت و مشکل داشت اون چیز محسنی از اون روایات در نمی آمد اون خلاصه اشی نه اون بود که اصولاً باید قرآن از آن تفسیر این جای بحث مداده این مدهد صحیح این حدیث تقلین از کردیم که به سند صحیح هم در مصادر عقل صدن مثل صحیح مسلم وارد شده و هم در مصادر آمه مسلمان این جای بحثی نرمه شمیده توی محصولیتی تو مناوده هم یا از اون روحانهی که نشخصی بود اونجا همین رو و بعد سهیرین حدیث مقابل بود یعنی چایی بحثی نداره این بلاقات سند و بلاقات احتمال جای بحثی نداره, نداره. نداره. بله بخاری نرمه بخاری این اما حالا و صد ها سند و مستری که داره این حدیث سر مثالا از کاره همه اولین کتاب هموقات بود که چاپ جنگی شد ایدون در اصفهان این کتاب چاپ کرد در شیشه. شیش جنگی شیش در سند و مفت در در تردیس برس کرد خود چاپ جنگی شکل بزرگی در جنگی شدی برای از من راجع به این زیاد صحبت شده یاد نداره که منجمه همین حق بزنیم و این کهره در این مستقر دارمت تقییم در تمام موارد نه خصوص احکام اقاید، مساعد مهاد، مساعد به اصطلاح مرموش به انسان، آزاری احاده مرموش به برس زمیان، مرموش به احلاق حتی راید به آیات رجعت که ای مثلا این رجعت در حدود افرشناده هم و تمیل این پای والدا سورنا چون باعث شده با با با که وحشر نام و مندره که بین های توسل شده که یک حشی هست از مضمون این حریه اصلا مقابل من اون شریرا و شریره هر چه اومد اون هر چیزی که گروگر میشن باشه تو دروازه روشن و با که برعکسی که از نقاط بسیار مهم مدتی بود که یک سن اه الان اترازه ردی احرسان و نصمت شکلی روشید اه الان ما نقومی نه سرد صحابه اه الان رخی برندشون اما سر یه مدت می کنم خلا کنه اولو برشه این که خلا رو این نگاه می زیاده اشکال برشه ای که اشکالان رو یه به تفکر شیعه بود وقت درشن رو برشه سلام به رقایات به مردم هستند اما این اختراع داره در آی مزحطن های مزحطن ها که این دست همه میخندند. مردم آیه مزخرف این کی نه با در این آیه دارند میخندند و ظاهر آیه اینطوره که قبل از یک هش جزئی خواهد شد. ادیم مشهور میشه قبل از قیامت یک هش سیوزی شده شد. که بعدش هم مسئله دوبلت که در قرآن آمده. و این نیست که این که ما را جذب می هیغت اون دا بهش یه چیزی فوق العاده اون بس دیگه سنم برواد باشه همین معلمی که علی مصطفی سلام به آیات تەسسد کرده این معلمی در کلمات استاد و ما همین و دیگر همه نوشتن دیگه همه متعرض دیگه شده و انساب هر همون حاله کلیه مرمه استراوادی و اصولی انسان یک طرح ناقصیه یک طرح بازن طبیعت انسان و صفت سلیم انسانی زیر بار بولیم و حقل او رو قبول نمی که ما بکنیم به آیات بران نمیشه تمسل کرد جز به روایاتی که اون اونو آهی دادن و اون روایات مجلس په همبر باشه باز نمیشه تمسل کرد جز به که از علم شرم اونها باشه و در بری این موادن این پسیلی واقعا هست انسان رو به شریعت تردن حالا کار به به شریعتی که برای کمی انسان ها در کل زمان شاید هم تصور همون خودشون و موید و خودشون توی می باشید به تصور این که برای آن ما برای کل کره زمین که از ارتباطات سر می ما این ت که مثلا پس کنیم این که ما احتیاط دیم حدوده چه از این که به در اصول عربرمنه آمونه با اونار صحابه این احتیاط به نظر من واقعا ظلمه هم به شریعت مقدسه ظلمن به قرآن ظلمن به انسانیت زلمن. و این که اصولت ما از قرآن استفاده نکنیم اینه که این پنجره، به انسانیت به نظر من این پنجره و رابطه ای انسان با این رابطه ما ببندی این جماعیت و شریعت هستن اصلا. اصلا کلامی که ایشون گفته هم فیناسه خیلی سریعه و هم واقعا این تر چه به لحاظ انسانی شد چه به لحاظ اسلامی شد اصلا درست نیست ما اصلا نمیزده ما توضیر رو کافی اصلا یا از محوره ادراکات ابداعی ماست خب به قطع کنیم احتیاط خودش چی ما یه ادراک داریم اون ادراک جمعه وقتی میشه و گیر میکنیم خود رو میکنیم ساخته ذهن ماست نه واقعیت اینی که شما میبینیم یه قطعه خون در یکی از این دوزر افتاد اون در حقیقت اون قطعه توی یکی افتاده اینی که از شما از دوتا احتیاط میکنیم اون دوزرمی رو شما ساختیم واقعیت نزد. دائمان این نکته در ذهبتون باشه احتیاط ابداع نفس واقعیت نداره. این که ما بخاریم شریعت مقدسه رو با ابداعات نفسی و خودمون درست بکنیم واقعا ظلم به شریعته از همین مشکل در قیاس هم هست چرا افتاقیت رو قیاس حساسیت نشون داریم؟ چون قیاس ابداع نفس نکته افتاقیت شیدیم اگر روایت آمد مثلا شراب انگوری حرامه شما مثلاً این تیره هنگوی حلال خرامل، شما مثلا نوشته بشه. تو دوست کردی، از شریعت نگرفتی، از قانون نگرفتی. مشکل از یه آسمانه نه، این نیست، این ابداع نسلی‌مانه. لذا که قبول که قبول نمی‌کنه. این دین نمی‌شود. احتیاط این رو تشیشون راسته این معروش نه ما این نفس خود راسته به شرایط مختلف زمانه عمل کنیم این ادعا شریعت ما شو میگه حلال و محرم در حلالای اون جامعه راستا حلال و حلال و جامعه قرآن نفس این ادعاه نفس رو اشتباه نگیریم نمیسونه برای تفسیر شریعت کار ساز باشه این به اصطلاح اشکاله که آیون و حسولی های کردن توضیح بده و توضیح دیگر بذن بلکه به نظر ما قیلت اینجا ها که این خیلی مسئله مهم نیست در نحوه ازتباه هر حتی روی ملوحی و ها هم تأثیر گذاره ما معتبدیم نه بر از روایاتی که مشتمل بر آیات یا علم آیات رو آوردن ناظر قرآن و ناظر به قرآن است حتی ممکن است روایاتی باشه که توش آیه ذکر نشده این ترکی که مربون یونسل نبدالرحمن از این نبدالرحمنی میکرد و متاسفه منشأ مخالفت قومیها با ها بایشان شد این بود این معنی مثل نبدالرحمن رو کنیم توضیح بریم او اصلا محتمی بود روایات کلا روح قرآنی یارن چه توش آیات ذکر بشه چه نشه به حرف کل روایات معیار اساسی روایات و روح قرآنی برش باشه حتی ولو آیات توش ذکر نشه الان توش ذکر خوب دقت بکنی این در حقیقت فقط روایاتی که آیات درش شرط نازده به قرآن و تمسیده اون روایه هست که شما به ظاهر میگینی مثلا این باید در حدود قرآن معنا بشید معناش باز اونجوری بشید نه حسن این مسئله دقیقی یعنی مسئله کچیکی نیست دو تا مثال بزنم که شو کرده همین حدیث را رو پرمومتی و این حدیث را تو این که ما هلان داریم شیشتار توش آیه قرآن نیست این حدیث را هران زاهر روشید و آیان هم اهل سنت اهل سنت سلاسی رو دارن سه تا دارن قطاب و, و ما که شما معروض سر داریم مطمئن حقیق مطمئن البته یه نقطه زریعی هست نشده من اینجا میگم از توبیهات چیز تو بحث هر این من که نسبتا الان معروف در اصابات از خسال صدوق نعروف که صند هم دارد خود صدوق همین حدیث رو در کتاب من لایحظه رو بدون سند چون خیلی مشهور شده به این علمای ما که, که سنده این که بدون صنده این همونیسی در خسال با سند رو این درست نیست این محلاقه سردشم اینه که حدیث رفت در موسیقی مندالی احضار و یک فرد کوچکی دارن و صدی رو بهتک میکردن این جنب. یعنی در, در حدیث رفت صد و نسیان آمده تو بعضی ها و نسیان و خطا آمده در موسیقی خبی و لازم که فرد رو و خطا چیه مشکول و نسیانه اما در این نسخه سه تامنه سه و نسیان و خطا حالا من باید باید نقطه کردم بحث برده تا این بحث در توضیح شده وقت این حدیث در عملیه داره که بین احل سنت معروفه مطن سلاسی اونها نسیان و خطا و استقراره باشد یه هم که شما داره که در این احادیث همون سالش می‌ووفره. و در کتاب ما همینه آمده. اون این سه تا دعی نداره. یک کاری داره. این سه تا دستور نمیگن که ما زیادونه. بعد در مساله ما مست روباهی هم داره. متن شیشالی هم داره که علائم متن صریح می‌دونه. متن نقطالی هم داره که در کتاب نقطی آره. یه مثلی هم در کتاب فخور رضا آمده که خیلی نمیده ای این خیلی کنانی اون رو که مؤمن داره هم که تن ما یه برای پس یک بحث راجع به متن حدیث و این چه مهداری در خیلی مهمی که در این بود که مراد از این رفت چیه حدیث رفت سلاسی ادهی از بزرگان امرسانت قبول دارن و ادهی از اهمه قبول ندارن اشتباه نشه حدیث رفت مختفیان نیست مثلا بخاری قبول نداره احمد بن حنبل بزرگان رو شد در حدیث رفت رو قبول ندارن اما در مواقع ادهی برو از مثل بن حد اینا می کنن این سهت در مرمان اجمال گفت تصیل شد مثل خب در میانه احسان درمه همین بخص ما هست که رفت چی رفت شده حتی ایلحه در سندگی, سندگی, سندگی, سندگی این بخص کتاب های اصول هم کشیده شده به در قصود شما اونو در اصول بحث براقص رو دارن اونو نبیه این که داریم در قصود رو قصود چون چونش نداره در مده تو کچه با در بحث در و مهمت و مبعیم مثل به نظر تو معالیم باشه به ذهن من آزدیاد باشه تو معالیم به نظرم بسه بس. اونجا مساقی قیبار محمر اون بایین دکس مکرد شمه هلیت رفتایی محمر یا همه روحنم بایین مثلا خامده بیانه محمر از این محمر یعنی موراست نفع یا به اصطلاح ما احکام جداری مزنمه بیشه یا شیطن برداشته بیشه مراد اینه نه اینکه در حال خطایی ها استقراف وقت برداشت میشه. وقت وجه بودش محبوظی. فرق که ای مثلا اگر فرض شخصی در مثال اوکی خودمون از چراقه رد شد به خاطر اینکه کسی هفتی خوش سر سیاسو که آقا درد میشه استقراف دولتی رو تو رو شریع نمیم کنه که تو از یا بیمار خمیه خفصی به بیمار میگونی که بردارد یا پس تو خود ماشین بولای دستار خارج درست شو والله یکون این حکم برقرار نمیشه نه هم یک احکام جزایی رو برمی داره بگذینه <تصفح> یعنی بگه ما شیخ شیخ هم این معنا رو البته شیخ احتمال داده گفته مراد یحسنه علی کنه مراد نفی مؤاخذه در کتاب ما اصولیه ما مسئله مؤاخذه در و, و, مارف و, مارف و, و, شیخ و بعد شیخ بعد همون به احکام جزایی البته این توضیح رو هم عرز کردم احکام جزایی بهطور کل دوج به بطور دو یه احکام جزایی که بر عنوان تمرد بر قانون و اسیان بار میشه یه احکام جزایی که فی نفسس کار به تمرد نداره مثلا شما شیشه شیشه مردمشکوند ان حکم جزایش که زامن این کار به تمرد نداره فرام میشه اشتبا کردید کسی رو کشید. کار به تمرد نداره پشتبان خواهد افتاده توی کسی افتاده شما این همین این سنت ثانی احکام جزایی رو برمیدار درسته شما این سنت دوم تا تمرد نیست تا به شما هم شیشه مردمش کنید یه نقص ایجازه هست این جوران وقتی زد این یکیسی رو کشتی نقصی تو خانوادهش ایجاد کردی پس این نوناور خانواده بود. تا این خانواده جا بیوزن خودشون راهشون پیدا بودن پس سه تا چهار سال پس به خاطر این که این دیگه بتونه مثلا جبران این نفس رو بکنه تاش چهار سالی بعد به خودشون رو جمع بکنه پس احکام جزایی که تابع واقعیت اینها با حالت سرف برداشه نمیشن این منشاره میگرم الان که شما واضحه من برای این موضوعاتون خیلی دیگه. باشه مثلا احمد که از مشهور فقهای حدیث راوینه، این کتاب داره. از من در کتاب‌های های خدا نیله. نسخ الرایه یکی از مذهب اهالی داره. نه اونجا از اعمال احمد بن حنبلی انصار نیست چون توش داره خطا برخشته شده. خدا در قرآن من خطا خدا من یک اون و من یک طور مهم خدای مال یه با همینطوری برداشت نمیشه الان با این توضیحی که ما پیشون خیلی واضح شد حالا احمد بن هم هم هم حدیث از ده اینه که شال پیش هم چنان ما و به صورت که همین سو قرارداد و و ترتیب شکیل عیدین هم حدیثش و و حدیث توارد این جواب احمد بن حنبل روشن شد این خیلی بنده باشی که حدیثا احکام جزایی یا به احکام جزایی که ناشی از تمرد بر قانون باشه میگه شما خب که به دستور دولت ضد مخالفت کردین باید نه پس که میگن نفی مرا مرادشون اینه حدیثرا مفادش اینه که مؤاخذه برداشت بشه خب پس این به درک درعاتی مغمنی اونایی اعتراضی هم داره و قبل از هم که اصول هست حالا من میخوام چون حدیث در محل میشه در حد خودش ما میشیم مغمنی اصرار داره که حدیث رفع نفی نه نه نمیخواد این. راه حکم ایشون میفرماید که شیش در حدیث ماشون اهل سنت نگاه نکرد در حدیث رفت ما شیش تاست. پنج داره گفتن وقتی واقعیه سم و نفسیان واقعی. واقعیه یکی رو گفتن نفسی ظاهریه واقعی که بحث سیاب داره با ما اون مالای علمون مالای علمون در کسی وقتی سنت نیامده روشن شد روشن اجماله در اونه هم ما ایش رو بگه که مالای علمون واقعی بشه تصویب لازم نمیشه در فضانتیه پشت. پس طنج داشت نفی واقعی است آقای سلام علیکم یعینی عرض زارم طنج داشت واقعیت، واقعی ظاهری که اون ما را بیان نمیشه اکثر این دقت که متن صلوخ در دو هم میکنه و نتیجه گیری بفرن نه شما بحث دیگه بحث اینا به اون متن مشهور که سحمان ایشان بسیار این راجع به اینجا پس یک آیا در حدیث رفت اصلا حدیث رفت هست یا نه حالا اگر ما رو از مرحله تحبت بگیدونی کنار بگیدونی رو تحبت اصلا این حدیث پیغمبر کی کار آیا این یک بار پیغامل برگفتن چون در حدیث ما داره قال رسول الله رو فرمان بریم احساس هم قال رسول الله داره آیا پیغمبر یه بار فرمودن همین ششتا رو و همین نقطا رو یا توی موارد متخرق فرمودن امام ساده مثلا جمتره امام صادق رو فرمودن رفت قال رسوله رو برمید چه گفته شده آیا این دو احبان محکه هست قبل یا بعد از اجرته چه حادثه ای اتفاق افتاده به هم در قسمه اینا بحثه ای ترخور کار به تحبد و حجیت خبر و حجیت سند نداریم این اصلا چهی واقع شده چه مناسب دادی دروایی پیش آمده کاری پیش آمد چیزی پیش آمد که پیه هم برکن این عواجه پرمیدن این رسمت که کلن اصلاف اون متعرض نشده اصلاف کلن واضی وقت نشده به اصطلاع ما وقت واقع گرایی نه بحث حجیت بیشتر اصلاف همه حجیت های حجت هست یعنی آیا اینمه جمع کردن خود پیه بر جمع کردن چه مناسبتی بوده مثلا بعضی از آیام نوشتن این شاید تو بحث حدیث دارم میکنیم در اینجا مفاد حدیث مفاد نفی خطا به مفاد لیته تامن یعنی خطا نیست باز بعضی اخلاف کردن که نه این نفی خطا به مفاد لیته ناقص است خطای گفتن رفع انعومتی هم داره نه گفتن رفع از خطایی گفتن انعومتی چون کلمه انعومتی داره اینجا مفاده تامه نیست یعنی چی؟ یعنی خطای تو حساب نمیشه خطای تو نه خطا بردسته شد تو از چرا هرمز رب شدی مخالفت کردی این مخالفت نیست این که در حال اطراهه در حال اصطلاحه نیست. از خونید. نیست. پس یه اختلاف هم در این کردن که آیا مفاده لیتری فامن هست؟ مفاده لیتری نافذ هست؟ توش مالای هرنون هست؟ این رابطه چیه؟ چی معنا بکنیم؟ نفی معاخذه هست؟ نفیه بهتا حکمه حالا ما در حدیث یه متنی ما داریم که خیلی هم مشهور نیست در کتب عبدالسنت هم نیامده اون مضمونش اینه که رسول الله از خدا خواست قال رب الله تا آفدنا انسینا او اخنا فستجابا الله لگذاره اگر این مضمون درست باشه <تصفيق> حالا ببینید ما بیایید این حدیث را تا اینجا حدیث را رو جزای از قرآن نمی که روح قرآن که میگن اینجا اگر حدیث رفت رو بگیم زایی شدید رو که <تصفيق> در حدیث رفت رو در زمین قرآن معناه رو کنیم تو این حدیث هم آمده تو بعضی از روالت داره که این ربانه مالا تو آخذ نفسی نا و اخذنها رو تیغنبر در شب نعراج برمیدن این رو با هم زنگی میکنیم شب نعراج هم سال تنجام مبعثه هشت سال قبل از گیرن اینا رو زنگی میکنیم احتمال داره که بدایات حدیث رفت در همون سال محراش بوده. در شب محراش بوده. همیزان که کنم تبوریم برده. یعنی یواش شواش معلوم میشه که مطلب زیر بنای قرآنی بگاه کنه. آقا رفت کردنیم؟ تا حالا تمام این نوشت هایی که در حدیث رفت شما نگاه میکنیم فقط آنها حدیث رفت رفت کردن. و اگر ما آمدیم با زیر بنایه قرآنی اون نقطه رو من هرز کردن ممکن است آیهی در حدیث نه اما چون با روح قرآنی خواهی نخواهی نتیجی دیری ما و فهم ما و درک واقعیت شرم میکنه و چون در مدید مکه منظره هنوز مقام جهن نبوده بعید تمام این حدیث رفت مکه باشه اگر اون را تفرون بکنیم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا إثرا سنگین یعنی مالایف اون لو یاخربكم الله دلغ رفت در ایمان تو اگر لغو به معنای شهر بگیریم این شواهد قرآنی اون وقت اون متن صدوقی در تقیع آورده جلو میکنه. سهم و خطا و نسیان کو برد ببین چقدر متاوله هستند علوج این که مذهبی چیه سه تا سهم و خطا و نسیان یا دو تا خطا و نسیان اگر ما اومدیم در اگر ما آمدید این حدیث رو عنوان این که پیغمبر اکرم دارن توضیح میدن اون روح مجموعه اموری که در قرآن در این امه شده الا مالان بوخره و هر قانون مصنعن رو به نیمان. این مسلم در مرکز مال قصه عمار ریاست میگه همه میدونن دیگه پس این مالایو کرون یک یاست الا مذکور رو این جزء آیات مدینه است معنی میشه که اگر ما حدیث رو بخوایم پس یک بحث متن حدیث دو بحث تاریخ حدیث سه بحث حجیت حدیث چهار، بحث استظهار نهایی از حدیثه الان ما دو تا استظهار دیدیم یکی نفل معاخضه، مهد یعکام جزایی البته من طرح بحث میکنم، نهی که میخوام میگم این احتباط کامل هست. من دارد مطبخ که روشن بشه مثل این مصد نبدالرحمن مقتقر بود حتی احادیث رو باید اینجوری معنا کرد ما اگر ما نظر به باب معلوم شد که این آیه ریاست مبارکه احتمالاً باعث می شود باشه چون میشه خیلی چون الا من این من اوكله راجع به جناب آقای انمارستونم توی مکه تو مدینه که نبود و این من اوكله قطعاً مراد این نیست که حکم برداشته شود قطعاً مراد نفی موافقت است یعنی و از اکراهی که ما مهم بگیم چون در اوجه اکراه بر غفت شفت و بود اما کفت بود اصلا منکر توبید شد منکر خدا شد منکر رسالت شد از پیمنبر خارج شد از دید خارج شد بطران مراد چیه؟ مراد اینه که معاخذه نداره نهیم در الله معاخذه نه رب بنا ناس و آخذ نام نسیه و اخذانه بطران میخوره به معاخذه رب بنابراه تحمل علینا اصرن یعنی مالای یسیحون این قطعا نکاره مقام جمع این برای محافظه نیست کما همان که ورن لبین من قبل نام چون بعض از احکام سختیرانی در یهود موجود بود رب بنابراه تحمل علینا اصرن پس اگر ما شدید اون وقت از دیگه مالای علیون هم در قرآن بیارده اونی که در احادی سباست به این عنوان مالای علمون نیامده نگم تعمد تعمده خودو بکن چیز دیگه داری بیاری مثلا لا تلقه لا نستن الا ماعاتاها برای اینکه ماعاتاها شامل عین بشه این توضیحات بشه انشاءالله هم تو بخصه مکاسب مناسبتی هم تو بخصه اصول ما دو سا عزیز داریم یک عزیز علمی است یک عزیز این دو سا نماز با هم پیاس بشه یک عجز علمی یعنی یک کمبود علمی داریم یک کمبود قدرت داریم توانایی داریم لایک کلف الله احسن الاماته ها مال عجز قدرته نه عجز علمی مال نقص علمی هست لای لایک الله احسن الاماته ها را مذهبی شد تو بحث براءت و برائت قبول داریم اما اون ظاهر آیه‌ اینه ان اونجا عرض می ما الان سریع در مالای علم تو قرآن نداره سریع شری حتیل نبود که, که ما هیچ از نیست. لعنت را و من بلعش داره را از این, از این که ما قرآن رو ترستادیم بلی که انذار به شما بشه انذار رو از کلی یک اصطلاح قرآنیه یعنی مرحله فعیل ما میگیم و من مرحله مرحله پنجز داریم اما نفی و حفظ ظاهرم این با عنوان مالای علب. این تو قرآن نداریم پس بیدگاه چقدر فرقیه اگر بما بشه حدیث رفت و با موسون مختلفش در زب آیات کتابی معنا بکنیم با روح قرآنی کدوم محن ثابته یک ندیجی داریم در تمام این آیاتی که آمده خوب دقت بکنید با یک ذرافتی تمام همین نقطه مراحت شده لا تو آخذ نا نا داره. لا یا آخذ کمو لا کن داره. این میخوره با متن رفت ام امتی نه رفت از خطا یعنی میخوره با مفاد لیته ناقصه نه لیته تامبه حتی این نقطه زریف که آیا مفاد روزه ان امتی لیته تامت یا لیته ناقصه سآل مفادین حدیث این از که خطا نیست یا خطای شما نیست مفاد لیته ناقصه خطای شما بهید خطا از شما نیست در آیات قرآنی همه همین نقطه مراحبت لا تنالا تو آخر لا ی آخر کم الله در لحظه معلوم میشه که تعبیر بسیار دقیق آمده، یعنی تغییر حدیث نه آن امتی بازرگان. یعنی ما با روح قرآنی می‌شیم که چیزی شن حتی احادیث رو معنا رو کنیم. پس بنابراین، این که همه گفتن مراد نفی آخر است احتمالش تغییر، لکن نسبت به و خون ظاهر عالی است که نفی جاله. این که معلوم نیست اما همه جا نبی حکمت، ظاهری و واقعی. این هم خلاف ظاهر قرآنه این استظهار هم خلافه در نیستیان دایه آخذ کنده دا نفی و معاقل رفتن الله تا آخذنا نفی و معاقل از ذرافت ها، خیلی از بحث ها روچن شد با این نقطه که ما حدیث رو در ظل قرآن معنا کردیم همین حدیث لازر است. یک مثال هستی در این مثال هستی بیا دخونه مارد بحث شو مثال بحث که جمع بکنیم بحث رو. همین لازره خب که یه آلم مشهور بین قاهستان لازره رو من نفی حرف می‌گیرن. از علمای ما البته گفتی توری از از ها کتابه واژه وارد لازره اینجوری میشه میتونه محل خودش میگن اول بار بار ها احتیاض لازره نعم نه باشه نخ نه نباشه. در میان علمای ما هم اولین کسی که به عنوان مرحوم شیخ اصفهان ایده را بعد ازشون دنبال ایشون رفتن معروف بین علمای اسلام و علمای ما نفی حکمه نفی حکم حده ای مثل کفایی هم دنباله اصلا نفی موضوعه نفی حکم به لسان نفی موضوع از این بحث هم اطلاع شده اعتبار, اعتبار سندش از کردن که دارن حدیث لازران هم در میانه بزرگان اهل سنت نقل نشده مثل بخاری و مسلم و سحاسد نقل نکرده از باسته اگر موفتر مالک یاد سرهای این کمافی موفتر مالک درد بلک کتاب های درجی دروسه کتاب های درجیه که مثل بخاری و مسلم ندارن حدیث لازر رو قبول در کنم پس این روشه وقت رو همین حدیث لازر رو اگر ما بیاریم در ذوق قرآن معنا رو این اینجوری اصلا معنا عوض میشه تفسیر قانون هست بگیم در قرآن کریم لازر رو آمده لا لاسوزار والدتون به ولده ها به دین غیرموزار اما موردیه بخط بکن پیغمبر اکرم کاری که فرمیدن این معنی سنته پیغمبر اکرم از دو مورد سه مورد چهار موردی که در قرآن هست تحضیح کردن مطلقا در رزران رو برداشتن و خب اگر این شد نفیشش یک هم ثبوت حدیث در میان و لذا مشروعه بین کمه قبول کردن به استثنال های و هم اضافه بر او در میان که همونی که مشروع فهمیدن مثل اونایی نفی حکم هستن. نه نهیه نه نفی حکم به لذا نفی موضوعه چون در احکام قرآن این نفی حکمه اونی هست که مناسب با سنت رسول الله تحمیم همه در قرآن مثال سر در قرآن ما رضا رو دو مورد داریم یکی اخواتی که امه ها مادر رفا هم وقت ما اگر این قاعده به قبول کردیم که از کارهای اساسی رسول الله این هستی در سنت خودشون حدود قرآن رو بیان می وقتی که می کنم یه رو ممنون رضا ما یه رو ممنون یا هر رو ممنون رضا ما یه رو ممنون رضا اینجور مشهور اهل شده اینجور هم زراعت شده اولین زراعت مشهور ما هست. یا هر مومن الرضا ما یو حر مومن نسر هدف پیغمبر اکرم این بود که این دو مورد در قرآن آمده مال کتاب بقیه موارد بسنن همون حکمی که در کتاب راجع به اخوات و امهات آمده پس در نوایت اینطوری یا هر حر مومن الرضا ما یا هر مومن نسر این رو وره آیه قرآن تویزه اکنه این رو باید در طب قرآن معنی بکنی یعنی چه؟ یعنی همون شرایطی رو که در بابه به اصطلاح قرآن در احواز داره و حکم داره این توی باب دایی هم میان اگه دایی رضایی بود اموی رضایی، اموی رضایی به خصوص رو داره که آیشه اگه رضایی داشت، پیغمبر فرمودن که به اصطلاح اون محرن نسود چون اموی, اموی رضایی برادر رضایی برادر رضایی به خصوص در ربارت آمده چن حضرت حمزه برادر رضاییپیغمبر بود هلبته رضا در حلیمه سعدیه نه و حمزه ز حلیمهسعه سعدیه نخود بود عواد که پیغمبر به دنیا مده بودن که هنوز حلیمه سعدیه ر نرفته بودن یک برده داشت بنده داشت برده داشت ابوله عمو پیغمبر او به پیغمبر چیز داده به حمزه هفون شیر داده و رضا خود پیغمبر اکرم با عمو ون حمزه برادر رضایی بودن در ی روایت معروف سنی و شیعه نقل امیر المومنین فرمدن شد دختر همزه نگه فرمدن حکوب اخیلی نه رضا هست این برادر رضایی هست همون باب رضا رو در کن موردش کردن در یک مجموعه روایات با آیات یک نراخت میشه یک دست میشه پس بنابراین اضافه بر این که روایاتی پس بنابراین این نکته قرآن اساس تشریه نه که ما نمیفهمیم و روایات هم باید در زمین او معنا بشه حتی اگر ما مشکلاتی در انتاز روایات داشتیم با قرآن حلش میکنیم به اکت تصویر محمد امین استرابادی الان لازره رو با قرآن حلش کردیم رفعان اممتی مالای و رفعان اممتی ستسرشان این رو با قرآن حل کردیم روایت میشن جمعنبی قرآن <متصفح> <متصفح> یعنی همه باهم دارید و لذا این مبنای که نصیب نزر رحمان که روایات در ظهر قرآن این اصلا مراد از موافقت قرآن هم اینه نه اینکه که مزمون لحظه مزمون روایت تو قرآن باشه مراده از موافقت یعنی در ظهر قرآن و روح قرآنی داشته باشه بالاتر از روح قرآنی با اون اصول قرآنی بتازه مثل همین حدیث رفت اون مثل مالای عدمونش مشکل داره میکرد توجیل بکنه از آیات عنوان مالای عدمونشو آیات می نمیدن پس به احس شد به جای اینکه ما برای تحمه آیات برگردیم به روایات برای معرفت روایات با آیات برگردیم اسم این در همین مبنایی که حجیب خبر پیشامه شد از احس به شواهد کتاب و سنه اصطلاحه اینطوری به شباه دهده کتاب و سنه نتیجه مثل در همه حدیث در بعضی هاش نفیه حکمه در بعضی هاش نفیه حکمه نه اصلاحا ظاهر آیات و مارکه اینطوره و منافات داره رفعه رو در این معنی جامع بگار رو ده باشه اینشالا فرده این تکرار خواهد شد